آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم من نانم که ز جور تو بنالم هاشا بنده معتقد و چاکر دولت خواهم بستم در خمگی سویت تو امید دراز، آن مبادا که کند دست طلب کوتا هم زره خاکم و در کوی تو هم جای خوش است. ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاه هم پیره میخانست هر جام جهان بینم داد و اندران آینه از حسن تو کرد آگاه هم صوفی سو مهیا عالم قدسم لیکن حالیا دیرمغان است توالتگا هم با من راه نشین خیز و سوی میکده آی تا حلقه ببینی که چه صاحب جا هم مست و گزشتی و از حافظ اندیشه نبود آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم خوشم آمد که سهر خسرو خاور می گفت با همه پادشهی بنده توران شاهم